آنها که درآمدند، آمدند، در جوش شدند، آشفته ناز و ترب و نوش شدند، خوردند، پیالهی و خاموش شدند، در خاک عبد جمله هم آغوش شدند. بعدا که نصیب نیک بختان بخشند، اسمی به من رند پرسان بخشند، یعنی که مرا از ایشان چه مرند، بربد باشم مرا بدیشان بخشند. از گردش روزگار بهری برگیر بر تخت طرف نشین به کف از زاعت و معصیت خدا مستقناست، باری تو مراد خود ز برگیر افلاک که جز غم نفزایند دگر ننهند به جاتانه رو بایند دگر نا آمدگان اگر بدانند که ما از درچه چه میکشیم نایند دگر